الحمد لله رب العالمين الصلاة و والسلام على سيدنا ونبينا محمد و على الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارض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 السلام على علي بن الخطاب زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبي السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر القاسم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي بن الجباد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن الزكي علي الزكي العسكري، السلام على الحجت بن الحسن القائم. اللهم كن لوالدك الحجت بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هازه الساعة و فی کل ساعة ولی و حافظ و غاید و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه و ارزک و تمتعه فیها طویلا اللهم عجل لولی الفرج و من انصاره و اعبانه عزو بالله من شیطان الرجيم و ازا سعله کعبه دی اني فاني غريبان عجيب و دعوت الداء ازا دعان خل يستجيبو لي ول يؤمنو بي لعلهم يرشدون آييه شریفه 186 از سوره مبارکه بقره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 این است قبل از اون که محتاج درخواست کند به او جواب بدهد حتی نگذارند اونها سوال کنند درخواست کنند عرق شرم سؤال و درخواست بر چهره انها بنشیند تا حدی که در روایات ما آمده است شخصی به امام حسین علیه السلام وارد شد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 وقتی این شخص رفت حضرتش باوردن بیرون یکی از یاران خاص حضرت سوال کرد یبنه رسول الله راز این گونه عمل کردن چه بود؟ حضرت فرمودن ندیدید چقدر آبرومند بود و خجالت میکشید؟ من نخواستم بیش این شرمنده شود خواستم چشمش به چشم من کمتر بیفتد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 اینان از متن بخوانم که بیان معصومه و برخی که در این وادی اتفاقا وارد شدند و یک کارهایی هم در این زمینه انجام دادن از باب نمونه ارز کنم اونها هم حتی به شعرم آوردن این مطالب رو و اعتراف کردند اگر این گونه است نظام الهی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 مگر ما نداریم حتی در ادعیمون که یکی از ویژگی های پروردگار که در دعاها می خانیم اینه یا من به نعم قبل استحقاق ها ای کسی که آغاز به نعمت دادن میکنی ابتدای به نعمت میکنی انایت می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 گاهی دعا زایع کردن حق دیگران خدا به اجابت نمیرسانه، گاهی دعا با لغمه حرام و اذیت کردن دیگران و زایع نمودن حقوق دیگران است که تا اونها انجام نشه دعا به اجابت نمی‌و و قسم یه نمونهشو الان مورد نظر منه میخوام عرض کنم فکر نکنید من الان از این باب این روایت رو میخوانم که امام علیه السلام فرمودن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 ابو عبدالله علیه السلام قال امام صادق علیه السلام, السلام فرمودند ان المؤمن لا يدع الله عز وجل فی حاجته ان المؤمن مؤمنی که خدا را میخواند دعا میکند در مورد حاجتش از خدا درخواست میکند فیقول الله عز وجل خدا میفرماید و دستور می‌دهد اخرو اجابته شوقاً الی سوته و دعاه تأخیر بندازید اجابتشو یعنی خدا به ملائک معمور خدا به کارگزاران عالم هستی خدا به مأمورین عالم وجود فرمان می‌دهد امام صادق می‌فرمایند اخرو اجابته تأخیر بندازید اجابتشو دیر بنده کنید به این زودین دعا به اجابت برسه شوقن الى صوتهی و دعاه چون خدا اشتیاق حالا این اشتیاق خدا اینا معنی داره یه مقداری شمشب شاید با چهار آیه قرآن بخوام اشاره کنم خدا شوق داره که صوت این بنده رو بشنوه ندای این بنده بلند باشه یه همینجوری با خدا راز و نیاز کنه درد دل کنه از ندا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 به اختضای فاصله ای که عاشق بازخونه قائلم صدا میزنم ندا مال جایی که این مقداری دور یای ندا هم معمولا برای منادا که فاصله داره به کار میره لذا گاهی در معرفت یا شناخت خدا را دور میبیند با یا رب یا الله یای به این معنی گاهی نه مثل هر افتاده‌ای که الان اوج نیازش توی جدول خیابون افتاده دو قدمیش یکی داره رد میشه از بس نیاز داره و دردمنده فریاد میزنه گاهی این با خدا حرف میزنه این میشه ندا از ندا میایم به دعا اونجایی که خودشو نزدیک میبینه فاصله حس میکنه خدا رو از همه نزدیکتر میبینه حتی ممکنه به زبان نیاورد، ولی همچنان که خیره شده به یه گوشه ای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 میخوای با خدا درد دل کنی اون گونه آرام باشه که اون خوابیده حتی متوجه نشه این نجوا میشه حالا این یه جنبه ظاهری ملاحظه دیگران و عدم ریا داره یه جنبه دیگه هم داره که حالا عرض میکنم بگذارید من روایت اول بخونم فیقول الله عز وجل اخرو او شوقن الاسوتهی و دعائه فاذا کان يَوْمُلْ قِيَامَة قال الله وجل و چون روز قیامت شود خدا میفرماید ابدی عبدی بنده من دعاو تنی فأخرت تو اجابت من خوندی دعا کردی من اجابت تاخیر انداختم و ثواب تو رو عقب انداختم و ثوابک کذا و کذا و دعاو فی کذا و کذا و اخرت اجابت و ثواب کذا و کذا این کذا و کذا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 اینجا چون اینو گفتم اجازه بدید شعر زیبایی رو مولوی این روایات رو شعر کرده چقدر قشن. یه شعری هم از مرحوم ملا رفیعای قزوینی که شاگرد ملا خلیل قزوینی بود از فقها و متکلمین بزرگ سده یازدهم هجریش دیوانی هم از او چاپ شده بسیار قوی به نام دیوان واعظ قزوینی که ملا رفیعای قزوینیه او همین مضمون رو در یه شعری آورده خیلی زیباست من حالا هر دوتا اول شعرش بخونم بعد وارد اون بس بشم پس ملائک با خدا نالند زار کی ای مجیب هر دعا ای مستجار بنده مؤمن تزرع می ببینید قیده و مؤمن شما آورده این که روایت داره این شعر مال است که روایت هم صادقی بود که مؤمن بنده مؤمن تزرع می کند. او نمیداند به بجز تو مستند. تو اطا بیگانگان را می دهی. از تو دارد آرزو هر مشتری. حق بفرماید که نذ خاری اوست. نز خاری او. حق بفرماید که نز خاری اوست. عین تأخیر این تأخیر عطا یاری اوست. ناله مؤمن همی داریم دوست. گر تزرع کن. گو تزرع کن که این اعزاز اوست. حاجت آوردش وردش ز سوی من. خیلی زیباست. دنیا داره قفلت. حالا اینجا اثر دعا که عامل قربه میخوام امشب وارد شم. چرا میگه دعا کن؟ اینه. دقت کنید. دنیا داره غفلت سرگرمی ها و مشغله ها انسانو به خودش مشغول میکنه انسان در گرفتاریها و ابتلاعاتی که بیشتر بیاد و خدا میافته، یا همه چیزش رو برا باشه این قاعده کلیست خدا بندگانی را که دوست دارد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 اون کارش بی موقع است؟ برفم بیاد به موقع است نیادم به موقع است خشمشم به موقع رحمتشم به موقع من غافلم که رو حساب شخصی خودم دارم نگاه میکنم میگم به موقع با لذا اونایی که خدا میخواد گوششونه بگیره تربیت کنه حواست جمع باشه او رو توی ابتلاعاتی میندازه که اون دعاک کردن و سوز و گداز زمینه توجه به حق بشه زمینه توجه به حضرت حق که شد غرب رو بیشتر میکنه حالا آیات مربوطترم عرض میکنم خیلی زیبا داره این نو روایات رو به شعر میاره حاجت آوردش زغفلت سوی من آن کشیدش موکشان تا کوی من کاری کردم پکشونش بیارن در خونه مرد کجا داری میری؟ در حالت عادی بعضی چیزات رو به خودش مشغول کرد یه حدیث از امام صادق یه وقت خوندم براتون امام صادق علیه السلام فرمودن یکی از اسامی حضرت حق آهه یادتونه؟ روایتشم خوندم آه یعنی دل پر درد دل گدازنده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 او وارود زود عادت رو بدم؟ و میره تموم شد گر برارم حاجتش او وارود هم آن بازی چه مستقرق شود چه مینالد به جان یا مستجار دل شکسته سینه خسته گو بزار. خوش همی آید مرا آواز او وان خدایا گفتن و آن راز او من خوشم میاد او خدا خدا بگه من خوشم میاد داره خودش یعنی میبینم داره میاد بالا بزه بیاد بالا این بنده لیاقت داره بیاد بالا حالا که لیاقت داره بیاد بالا من انداختمش تو سودوگداز حالا که انداختم تو سودوگداز میگم بزا با این سوزوگداز این رو مولوی میگه با توجه به اون روایات مرحوم مulla رفیعی غزبینی شاگرد مulla خلیل غزبینی هم فقیه هم متکلم معروف عصر صده 11 همه هجریه معروفی هم بوده که می اینجوری که در شرحالش نوشتن مال سی خورده سال قبل اول سخنور عصر خودش در غزوین بوده و خطه اطاف آدم زنده دلی هم بوده چقدر زیبا این معنا رو میگه تا زنده است دل نیست لذت پذیر دنیا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 دل زنده که دنیا اصلا توجه پیدانه دلی که مرده است دنیا براش مطره کی می شود نمکسود ماهیز شور دریا چون سایه چند افتی در پای قصر و ایوان بردار دستت شهر، بگذار سر به زهرا با سوز و ای این بیت منظورمه با سوز و عشق باشد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 اگه آتش شد میره بالا الان یه مشت چوب دقت کنید یه مشت هیزم استعداد آتش و شعلور شدن رو داره ولی آتش نشده هیزم افتاده افتادیم پایین بالا نمیره این چوب وقت بالا بره باید هکی کنش بدید تناب ببندید بکشید بالا جازبه زمین میکشدش پایین ولی وقتی آتش شد آتش خودش میره بالا انسانی که دل سوزان نداره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 هرگز به راه بالا اگه آتش شد دیگه راهنما نمیخواد بلد نمیخواد کمک نمیخواد خودش میره بالا اگر میخوای بالا بری باید بسوزی دعا مال سوزداراست یه دعای تصنعی داریم یه ادای دعا داریم یه دعا داریم مثل استغفار شما دقت کنید واقعا کنار حرم یک امامی خدا معرفتش رو بده خدا حالو در کش رو بده تو ایوان امیرالمومنین، خودم تو زیانش بیاره زریح مولاست علیه اینم ایوان مولاست شما اونجا میخوای حرف بزنی، یه زمانه آدم میخواد بگه خدا تو رو با آبروی این علی من رو بیامورد منو قبول کن خب این میبینه که بالاخره تو ایوان استادیلی دیگه باید یه چیزی بگه خب دیگه اونجا که نمیشه بگه که خدا گوش کلو چنده. خب بالاخره یه حرفا رو میزنه اما یه وقت با تمام وجودش احساس میکنه خدا علی من کجام یه دفعه تکون میخوره منم میخوام بیام بالا اونجا از اعماق وجود میگه ای خدا تو رو به جان این علی منم بگیر تکونی بده این استغفار یا این حرف زدن این اگه لفظم نباشد همین قدری که از دل بیاد، این دعا اما صد بار این لفظم داد بزنه، خدا منو به علی بره من خودم میفهمم این همین از در حرم مولا اومدم بیرون، همون هم کل اول یا بدتر از اول. این که دعا نیست که. دعا اگر شد از سوز حکایت میکنه. از ناله حکایت میکنه. از عمق جان وابستگی به او. پس چرا خدا با ما میگه دعا کنید؟ مگه خدا نمیگه کریم زودتر از کرم بده. حالا جواب بدم بیام تو قرآن. خدا گفته کریمی قبل از اینکه سوال کنه کرم تجزه میده بهش بده. سوال از کی انسان از انسان من اون جلسه ای که توضیح دادم خواسته پایین بالاتر از پایین که امره. خواسته مساوی با مساوی که دعا نیست خواسته پایین از بالا دعاست انسانونه ها الان همین فقیر محتاج ضعیف نیازمند به نان شب اومد در خونه شما در زد آقا جون تو رو خدای که نون شب به من بدید از کجا معلوم از شما بالاتر نباشه هر گوش گمان مبر که قالی است شاید که پلن خفته باشه شاید در خیر از شما بالاتر باشه لذا اونجا مقوله دعای به این معنی نیست اون مقوله یاریجستان ها در کنار همه لذا گفتند سعی کن تا ببین اگر کسی نیازی داره زودتر از اینکه درخواست کنه بهش بده نزارخه اما دعا یعنی پایین از بالا خواستن پایین از بالا خواستن حرفی که قبلا گفتم پایین رو به بالا متصل کنه مثل سوال علمی چقدر دستور داده شده سوال کنید سوال کنید پرسیدن عیب نیست ندانستن عیب است حتی امام باقر علیه السلام فرمودن حلاق شدن مردمی که سؤال علمی بین خودشون طرح نمی کنن. چرا اونجا میگه سؤال کنید؟ چون سؤال از کسی میپرسن از او بیشتر بلده اونی که در زمینه علمی از شما بیشتر بلده برو سؤال کن بذارت رو بالا حالا سؤال از خدا خدای لایتناها به ما لایتناها مطلق کمال کمال مطلق من انسان خدا میگه انسان میخوام بیارم بیارمت بالا راه بالا اومدن اینه که منو منوهی بخانی برای این تو رو مبتلا میکنم تا بخانی اما اگر دیدم تو ابتلا احلی حرفانیسی راهاد میکنم لذا این جمله ای که تو عبارات دعاهای ما اومده دقت کنید مرتب معصومین با مبان یاد دادن یک نگید خدایا هیچگاه ما رو مورد امتحان قرار نده حرف غلطه چون سنت خدا اینه که شما رو مورد امتحان قرار بده.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 ولی ببینید این حرف چیه تو قرآن یک سوره هود آیه شست تقاضا دارم دقت کنید آیه چی میفرماد سوره هود آیه شست خب اولا آیه که مورد بحث ماست چیه؟ فعضا سعالک عبادی انی فعنی غریب من غریب من نزدیک انی غریب این آیه رو داشته باشید. دعا هم گفتیم قبایتی ب... جلسه قبل خوندیم بعد از همه اون حرفا دعا چیست؟ دعا برای قربه خب میگه من غریبم من که نزدیکم دعا میخونیم تا نزدیک بشین تحصیل حاصله یا نه حالا این چارتا آیه رو دقت کنید میخوام بگم سوره حود آیه شست داستان جناب سمود قوم سمود و پیغمبر این قوم بعد از قوم عاد آیه رو خدا داره میگه بعد میاد راجب قوم سمود که تقیان کردن بیدین بودن خدا رو فراموش کردن و سموده اخاهم صالحا غال به سوی قوم سبود برادر اون پیغمبر آمد صالح بود و به اونقوم گفت قاله یاقوم بود الله مالکن من اله غیر رو خدا را عبت کنید خدای دیگه برای شما نیست خوب ان شعکن منل ارعرض ومرکنفی ها خداست که برای شما زمین رو قرار داد آبادی و امران و امران و آوادی زمین رو برای شما فراهم کرد وطرفر ها ثم موب و الی استقار کنید طبهه کنید به سر خدا برگردید ان نرب.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 شریف این مطلب رو دنباله این آیه شریفه میفرما چون در روایات برای ما توضیح دادن انسان تا قبل از لحظه جان دادن قفلتش زیاده مشغلهاش زیاده توجه با عالم معناش کمه لحظه جان دادن روح یک آزادی پیدا میکنه که توجه با عالم معنا رو در مییابه اونجا براش مطلب خیلی روشن تر میشه حالا فلولا اذا بلغت الحلقوم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 از شماهایی که کنارش نشستید نزدیکترم. تا اینجا دو جور قرب گفت یک این نربی غریبون مجیب رب من نزدیک اجابتم میکنم اینجا فرمود نحنو ما اقرب الیه، ما با اون محتضر که داری جان میده اقرب الیه منکم از شماهایی که دورش نشستید من نزدیکترم. یعنی چرا؟ این دو تا حالا داشته باشید تا جنبندی کنیم. سه سوره قاف. آیه شانزده. سوره قاف آیه شانزده. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما تو وصف نفسه و اقرب أقرب من حبل الورید نه از شما به اون نزدیکترین از رگ گردنش به خودش نزدیکترین قرب هویداری چی میکنه؟ میسی که درجهشو وید شدیدتر. از قرب اتصال گفتم که دعا از قرب میکشونه به اتصال به جایی میرسه بنده که دیگه متصل میشه قرب قرب به اتصالی میشه حالا آیاتو دقت کنید ان ربی غریب و مجید نحنو الیه اقرب منكم خب الان فرض بفرمایید بنده داران جون میدم مختزر این جام جلو تریبون باشن شما دور من خب خدا داره میگه من دی محتضر از شما شماها نزدیکترم خب این یه درجه از قربه اما در آیه 16 سوره قاف میفرماید اقرب الیه من حبل الوریت ما به این انسان از وقتی گردنش هم نزدیکتریم دیگه از این رگه گردن به من چی نزدیکتر؟ حالا بیاد سوره انفال آیه 24 دیگه از این بیشتر چجوری بیان کنه در سوره انفال آیه 24 می یا آیه ها لذین آمنو استجیبو لله وللرسول رسول ازا کم لما یحیی کم اجابت کنید خدا و رسول رو شما رو میخوان زنده کنن زنده اینه این معنی کلام خواد بگه وَعْلَمُوا ان الله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 با مشکلی که در تبیین این بحث دارم و همه امشب شب که از عزیزان میگفت این حرفا رو خیلی مطبع نمی کردی. حالا که وارد شدی یه مقدار بیاد تو این میدون گفتم چشم اگر انایت کنن انشاء الله حالا من با همه محدودیتی که در تبیین این دارم مجملی اجازه بدید از با این فرمایش از تحمید احجالبلاغه وارد شم حضرت وقتی میخوان خدا رو به ما معرفی کنن میفرمایند داخل فل اشیا لا به ممازجه و خارجون عن الاشیاء لا به با هر چیزی خدا هست نه اینکه ممزود شده باشه شده باشه خدا با من هست خدا با این هست خدا با این هست عین ای ما تولوا وجه الله اینکه که قران گریمه. داخلون فل اشیاء نهج البلاغه است خود خب مطالعه کنیم فل اشیا مگه این شی نیست مگه من شی نیستم مگه این شی نیست داخلون فل با هرچی چی هست لا بلممازجه نه اینکه قاطی شده باشه مخلوط شده باشه و خارج عن الاشیاء از همه چیز جداست است بیرونه لا بلمفارقه نه اینکه واقعا جدا باشه اصلا ارتباطی با اون نداشته باشه ربطی نداشته باشه خب حالا اینجا دقت کنید این بحث شناسی رو با این بحث دعایی که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 در وجود من من روح الهی که از امر ربه لا بالممازجه و لا بالمفارقه این بهعنوان یه مثال رو ارز کنم روح هست نه مثل اینکه خون دورک هست به من میگن خون تو تورکت هست میگم بل میکو میگم آب یه سوزن میزنم یه تیکش میاد بیرون اینا ببینید یه تیکه رگو میزنم میگم ببینید روح تو بدن من هست کو آقا؟ کو کجا تو آستینمه آقا خودکار تو جیبمه اینا ببینید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 و امثال منه بدبخت در این عالم از روح غافلیم از روح جداییم با اینکه اصلا منه من روح منه حقیقت من روح منه چقدر از روح خودم غافلم و تمام کوششم برای جسم منه چقدر هست آقا نمیشه صبح تا شب چیزی که مطرح شکم شهوت پول مقام دنیا ریاست منیت خطایی حزب گروه، دار و دسته جناب و و و روح چی شد؟ معنویت چی شد؟ کمال اینس اصلا به کلی فراموشه گاهی از صبح تا شب به فکر روحی اگر هم یه لحظه برای مسائل دنیایی ناچاری بالاخره باید به این جسمت هم برسی اونم از این دید از دید روح به جسم نگاه میکنی چون روح میگوید من در عالم مادم نیاز به ابزار مادی دارم پس باید به ماده توجه کنی توجه شما به مادم از دریچه روحه میشه یا نه اینجا به عنوان نزدیک شدن به بحث ارز میکنم پس هرچه شما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 خابیدنش عبادته چرا چون بر مبنای سیطره روح بر ملک داره میخوابه بر مبنای احاطه روح بر بدن میخواد بدنش و الآن غذابش بده اینو ببرید تو بحث خدا و عالم حقیقت اصلی خداست حقیقت جهان پروردگار عالمه ما از تو فیل انایت اوست ما ادم ما و هستی ها نما تو وجود مطلق و هستی ما ما همه شیران ولی شیر علم حملمون از باد باشد دم بدم حملمون از باد و ناپیداست باد جن فدای آن که ناپیداست باد همه چی از اوه ولی اونقدر سرگرم این امور شدم یادم رفته خدا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 اقرب و منکم یا منهم گاهی میاد میگه اقرب و منحبل ورید، گاهی میاد میگه یهول و بین و قلبه یعنی چون از قلب هر چیزی باید ترابش کنه این از قلب هر چی میخواد بیاد اصلا خدا غیر از خدا چیزی تو دلش نیست از خدا هر, هر چیزی از دلش در میاد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 خدا رو با اون اسامی بخوانید بد دعا کنید. حالا من یه نمونه شو میخونم. کافی جلد دو. صفحه 484. باب اصنا قبل الدعا. ستایش الهی قبل از دعا. حدیث شماره دو. قال فی... ابو عبدالله علیه السلام دقت کنید. امام صادق علیه السلام فرمودن. این فی کتاب امیر المؤمنین صلوات الله علیه. امام صادق میگه در نوشش نیامیرالمؤمنین این بود کتاب علی این رو داشت. اینل مدهدت قبل المساله حتما قبل از شعال از خدا مده خدا داشته باشید. فاذا دعوت الله از وقتی میخواید خداوند را بخوانید دعا کنید خداوند رو تمجید کنید. طرف پرسید کیف اومد جد او چجوری تو کتاب داره توضیح میده. غالا علی فرمود تقول میگی ببین چی میگی یا من و هو اقرب الی من حبل البریت یا فعالان لما يريد یا من يحول بین المرء و قلبه یا من هو بالمنظر الاعلا یا من هو ليس كمثله شيء چرا تو کتاب علی میگه قبل از دعای اینا رو بگو آیاتی هم که آوردم روایاتی هم که از قبر خوندم حالا جنبندگی کنید دقت کنید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 یک زمان سنگ تحمل و استعداد آتش شدن ندارد هر چی کنار آتش میداری یه مقدار حرارت میگیره بعد که آتش رفت اینم یواش یواش سرد میشه یخ می همون سنگ اولیه است یه زمان چوبه وقتی این چوب کنار آتش قرار میگیره میپذیره و میشه آتش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 مایه اش است و اصل مرحمت هر کجا دردی دوا اونجا رود هر کجا پستیست آب اونجا رود آب کم جوی تشنگی آور به دست تا بجوشد آبد از بالا و پس تا نزاید تفلک ناز و گلو کی روان گردد پستان شیر رو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 انایت خدا را به سوی خود آوردنه، انایت خدا به سوی خود آمدن، شما رو بالا بردنه، هرچی بالاتر رفتید، قربتون بیشتره، هرچه قربتون بیشتر شد، اون وقت داخلون فل اشیا لابل ممتازه، همش داخلون فل اشیاش براتون جلوه میکنه، نه خارجون از اشیا لابل مفارقة. تو حمای مرحلی میشه، اسمی از تعلیم اسکارالی سالات و سلام بردن. اتفاقاً داره که یکی از اون جاهایی که نمیخوام روزه بخونم میخوام این استفاده بحث این ارتباط بحثیم بکنم دقت بفرمایید، یکی از اون جاهایی که ظاهراً خود ابی عبدالله خیلی بهش سخت گذاشته شهادت زلی از حالا شاهد میارم امامان بعدم خیلی بهشون سخت گذشته یکی مظلومیت هزت همشون مظلوم بود همشون بهشون اجحاف و ظلم و بی انصافی در حقشون شد اما اون که مسی مثل کی مثلا داریم وقتی طرف رفت مدینه خدمت امام سجاد علیه السلام یا ابن رسول الله مختار خروج کرده داره یکی یکی قاتله کربلا رو میگیره بلا فاصله امام سجاد پرسیدن حرمله رو گرفتن خب آخه این چرا بلا فاصله حرمله چرا مثلا حتی شم رو اول مطرح نکردن حالا یه بزرگی میگفت من نمیدونم میخوام اینو بگم تا بعد به این قضیه که در ارتباطه با بحث ما بگم یه بزرگی میگفت مظلومیت از تعلی در کربلا از همه شهدا به نظر میرسه بیشتر باشه گفتم چرا؟ گفت برای اینکه هر هر سروازی لاعقل یه شمشیری در دفاعی از خودش دست دستش دست شم بود لذا وقتی تیر به گلوی علی اصقر خورد داره که ماموزه منظورم اینجاست گویی این که سخته اما این نکته جالبه امام حسین دستارو آورد زیر گلو علی از که مشتی از خون گلو این کودک بیگناه مظلوم تو دستش پاشید به آسمان میگن یه قطره پای نیومد اما منظورم این عبارته عرض کرد به خدا حب لن علی این الله اینا برای من راحته چون پیش توه تو داری میبینی داخل فلشیا لاول ممازجه همه جا داره خدا رو میبینه لذا اگر اینا اومدن گفتن الهی سینه اید آتش افروز در آن سینه دلیوان دل همه سوز هران دل را که سوزی نیست دل نیست دل بی سوز غیر از آب و گل نیست سوختن به اینجا رسیدن چی میگم من بچه چی میدونم که چه کردن تا به این معانی برسند که دلی خواهم که کزو درد خیزد بسوزد عشق ورزد عشق ریزد صفای خاطر حافظ درد است دل بیسوز همچون گور سرد است سوختن تا آتش شدن آتش شدند ره بالا گرفتند ره بالا گرفتند بالایی شدن و فریاد براوردن ماز بالاییم و بالا می میخوای بیای بالا بیا چه خبرتون تو عالم خاک مونده این میشه قرب و وقت برای این قرب یکی از اونها همین دست به سوی او دراز کردن و دعا کردنه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 تو دعای مکارم که میدونم گفت آقایی که توی وادیان تو دعای مکارم اخلاق دقت کنید و حاک از حالا بعضی ها میگم مخصوصاً دعاهایی که یک مقدار سنگین تر باره معرفتی داره سه دعای صبح هوواس دعای صبح ولی که عزیزجا میگفت خوندنش سخته تا چه برسه به شرح و بستش این دعاها رو دقت کنید بعضی جاها داره یا الله یا رب خب یا حرف نداست ندا قبل از دعاست دعا قبل از مناجات. تو همون دعا بعضی جاها داره ربه ربه بعضی جاها داره رب. الهی بعضی جاها داره یا الهی چرا از معصوم آقا مگه به حساب وابش حساب داره چرا بعض جاها میگه یا الهی بعض جاها میگه الهی بعض جاها میگه یا رب بده بعض جاها میگه ربه اون جایی که دعا اوج میگیره مزامینش دقت کن نمیراسم اگه شد میارم میخونم ان الله مزامینش دقت کنید اون جایی که داره از گناهانش میگه از کوتاایی خودش میگه یعنی من با تو دورم اونجا یا میاره یا ای یا ربی من کجا؟ ولی اونجاایی کهخواای غربی شماخواددم یعنی میخوام به اونجا برسه اونجا میگه ربه مثل این که مثلا فرض کنید حالا من گیرم و مجبورم تو این عالم اینجور از اون داخل اون فلاش شاهد گرفتم تا بیام تو این وادی بتونم عرفو بزنم. شما یک زمان مثلا در حالت عادی داری داعا میکنید یا الله یا رحمانو یاکریم و یا, یا رحیمما. اما یه دفعه حال پیدا میکنید کم کم حال معنوی بر شما غلبه میکنه اون سوز و گداز عرفانی بهتون دست میده میرید تو اون وادی که حس میکنید الان پیش خدایید اینجا یه دفعه خدا خدا خدا دیگه یام نمیگید تو فارسی میگید ای خدا اون حالا تو عادی نشون میده مثل اینکه با او اما اون که حس میکنید الان یه دست نوازشی داره به سرت میکشه تشویق میکنم اما که گیریم در زبان اونجایی که حس میکنی دست دراز شده بندم چی چیته بیا اونجایی که احساس میکنی یه دریچه نوری به سود گشوده شد اونجا دیگه حتی یاد به نمیاد خدا مثل اینکه دیگه غرق شدی این حالت رو ببینی تو دعا عیمه چجوری به ما نشون میدن میگن وقتی دعا میخواد به قرب برسه اونجایی که به ناس به قرب برسه دیگه یام از وسط برداشته میشه میشه دعا اونجایی که قرب بالاتر شد یحول بین المرعه و قلبه میشه دیگه اونجا سخن سخنی است که دیگه بیانش یه مقداری مشکله جلد اول اصول کافی کتاب الهجه صفحه سی و, و سه امام امیر علیه السلام با تلعب و زبیر مناشده داره میکنه حاجب محمد خودش حاجب دعا نیست ولی به مناسبت یعنی حرفایی که بنده میخوام بزنم حدیث ببینید این صفحه و این صفحه و این صفحه تو اینجا تقریبا سه صفحه حدیث از اون احادیث جاندار وحث امامته که امیر داره تلحب و زبیر رو خونده با اینا داره بحث میکنه یعنی با اینا داره صحبت میکنه آخه شما که میدونید من کیم من چیم شما چرا به این مناسبت دقت کنید صفحه سی جار. شجار امیر المؤمنین به اینا فرمود فنشده الله. شما رو قسم میدم به خدا حالا میخواد قسم به خدا بده کدوم خدا الذی خب و اقرب الیه کمن نفسک الها بینک و بین قلبک الذی یعلم خائنۃ العیون و ما تخفی السطور اتو قدما الیه کزبیر میخواد با زبیر حرف بزنه ها جلو یوقتی چیکار داری میکنی تو رو قسم میدم به با... کدوم خدا خدایی که ای ببینید بحث اقرب الیکم نفسی خدایی که الحاعل بینک <بينك> و بین قلبک خدا با تو اینجوریه اما تو کاری کردی که خودت از او جدا کردی حالا اگه خودتا از او جدا کردی زرحش خوید میکنی تو همین تو افل و اغول بخش کلمات مام رزا علیه السلام دقیق کنی تو بخش کلمات قسار مؤمر ابن خلاد یکی از یاران امام رزاست اومد خدمت امام رضا خوب دقت کنید ارز کرد که آقا انشالله خدا کنه فرج شما بشه شاید مثلا ولد عهدی رو دیده بود و زباهر هم رو دیده بود خیال کرد که خب حالا دیگه یوش یوش امام رضا علیه السلام نونش تو روغم میفته الحمدلله انشالله داره فرج حاصل میشه اوزار امام فرمود فرج ما فرج اگه بشه برای شماست ما که اگر در اوج فرجم باشیم گماش گندون باید توی کیسه لاک مهر کرده داشته باشیم بخوریم ما میخوایم شما راحت بشید ما که عالمون عالم دیگریه عالم اگر این همه داد زدند برادر و خواهر، خواستن دست منو تورو تو رو بگیرن تو دست خدا بذارن بگن بیای بالا ببینید به کجا میخواید برسید بزنتی تو کتاب عیون و الاخبار و و داره خب دیروز دیگه ایده امام رضا بود دیگه از اینم بگید بزنتیه خیلی ارادت به امام رضا داره اومد خدمت امام رضا این نکته ها اومد خدمت امام امام شام براش آوردن شامو خورد خدمت حضرت و خراسان بعد عرض کرد که بعد از شام آقا برم منزل آقا فرمود نه ای بازنتی هم جو بخواب چشما شما هم میکنی چشم حضرت رفتن اتاق دیگه اختخاب و خودشون بغل کردن بیارن این بر تو این اتاق برای بزنتی پرن کنن خود بزنتی نقل میکنه میگه تو دلم که هشت بر امام رضا داره برای ما اختخاب میاره گفت تو راه که حضرت از اون اتاق بیار تو این اتاق رختخاب بیاره فرمود بزنتی دور بر ندار اگر ما به شما علاقه نشون میدیم میخوایم شما اینجوری نباشین. خود تو از اون درجه ننداز پایی خود بزنطی میگه اونا آمدن ما رو اوج بدن ما رو بالا ببرن گره گدا کاهل بابد تقصیر صاحب خانه چیست خب از بحرین یه تعدادی از شیعای شیعای بحرین الان هم هست گذشتم بوده شیعای دل سخته عجیبی داره جوون ها من دیدم بعضی جوون های شیعای بحرینو ای کاش شرایط اجازه میداد نمیشه ماها مشکلاتی داریم گاهی اون جوون ها رو دعوت کنیم بیان اینجا شما ببینید گاهی شماها رو برداریم بریم اونجا اون جوونا رو ببینید آقا یک پارچه نورم بازیاشو به خدا من قبطه میخورم من یه گروهی از جوون های شیعه کویت بحرین امارات قطر این کشورهای خلیج و عربی رو میشناسم و همچنین در عربستان تو قتیف و احسا اینا با هم دیگه دارن حتما قبل از از آن جمعه نماز جفر تیار بخونن حتما سهر جمعه دای رو با این آداب بخونن یک کارهای جوون ها میکنن عشقی دارن شوی دارن میسوزن و میگدازن واقعا هن. واقعا هن حالا لذا گاهی وقتا با خودم اینجوری فکر میکنم خدا میدونه به خودم میگم حالا شما میشنوید من امروز نزدیک 300 کیلومتر راه رو رانندگی کردم تو برف و سرما و خصصا فکر نمی کردم انشب بتونم حرف بزنم خدا شاهد رسیدم منزل تصمیم گرفتم زنگ بزنم یاران این شب صحبت کنن من نيام حالام اجازه نمی ده از بس خستم ولی احساس کردم که نزدیک به ولادت امام رضا بوده و در آینده نزدیکم ان شاء بناس گروهی از این حسینیه کربلا برن اینجا تعطیل میشه شه یکی دو ای شاید گفتیم دیگه تعطیلات پشت سر هم نخوره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 یه دفعه میبینی از بحرین، از کویت، از عربستان از تو اروف شیعه پامیشه میاد امام تو آغوشش میگیره میگه سربازم بیا مهرم بیا عضو اصلیم بیا ولی من بدبختی که تو ایران از بچگی تو جلسات امام حسین بزرگ شدم و تو مسجد و حسینیه بودم و امام رضا علیه السلام تو کشورم بیگذرنامه گذرنامه میرفتم خدمتش به این را حضرت بگه تو با ما خیلی کاری نداری برو یبدال حسن شیای بحرین یه تعدادی را افتادن قبل از برق و اتومبیل و این قضایه این توی کرامات و رزویه یا آستان و قدس رزوی ثبت شده تاریخش زمانش و نام اون افراد پس جزه در آستان قدس رزوی نگهداری میشه در کتاب کرامات و رزویه هم شده اونجا ببینید یه تعدادی از شیه حرکت کردن به نزدیکی های رسیدن ورف و بوران عجیبی شد همدیگر رو گم کردن راه هم تاریک شب شد یخ هم زد اینا مال بحره منطقه یرم سیر. دیگه احساس کردن که توی یخ و سرما باید بمیرن دو سه نفرشون میگن که ما این اسب و شطوری که هم را داشتیم مرکبی که داشتیم این رو اندازه‌ای بود گلیمچه‌ای بود هرچی بود اینا رو برداشتیم گفتیم دیگه حرکت نمیتونیم بکنیم چون که این برف و باران هرچی این مرکب میره ما نمیدونیم کجا میره ما جایی رو بلد نیستیم یه گوشه بشینیم اینا رو بکشیم سرمون فعلا که چند نفری مثل لاو مانن یه گرما ما رو یه مقداری محافظت کنه ببینیم چه میشه گفت یک پیرمرد زیر این بیهوش شد این دو دیگه که موندن خب ترس داشت گفت یکی از اینا گفت دلم به درد من. نمیدونم کدوم طرف امام همینجوری است به یه طرفی رو گذشته رو دوختم گفتم که یا علی ابن موسر الرضا ما شیعه‌ی تویی ما از بحرین راه افتادیم اومدیم بیایم تو رو زیارت کنیم اگه شما میپسندید تو این برف‌ها دفن بشیم بمیریم ابن نداره ولی شماتت غیر شیعه های اون منطقه بازمانده‌های ما رو میکشه میگه دیدی اگه این همه دم از امام میزدید برف و بوران تو را باشون چی کار کرد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 خاشو مشعل روشن کن مهمونام تو را مونده فوری از خواب پریدم تو این برفویخ به زحمتی دفتم بالا مشعل روشن کردم اونام میگن ما یه دفعه دیدیم حالا دستی حرکتشون داده آورده یه دفعه دیدیم روبروی ما یه مشعلی روشن شد گفتیم مثل که راه رو پیدا کردیم حرکت کنیم از این طرف هم میگه تو خواب به من فرمود مشعل رو روشن کن چند نفری فانوس بربرید برید به مهمون های من تو این مسیر برید دیدن یه فانوس به دست اومدن گفتن ما رو امام رضا را سنده کی بیایم شما رو ببریم یا رسول الله یا علی <سه> یاب سر رضا یا حجت الله اعلی خلقه یا سیدنا و مولانا ان توجهنا واستشفنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیهن الله اشفع لنا عند الله اما این امام رضا سلام السلام مثل اجدادش و فرزندانش هم مثل او همه مسئله کربلا رو توجه داشتن حیفم میاد تو این حال شما اشارهی نکنم عباسلت میگه فرمود عباسلت اگه دیدی عباس رو به سرم کشیدم دارم میام فرش و حجره رو جمع کن آقا چرا فرش و حجره رو جمع کنم اگه عباسر کشیدم بدان منو مسموم مسمون کردم اگه منو رو میخوام مثل جدام حسین رو زمین خالی جان بسپارم